قُلْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حِلْتَ لَكُمْ دَائِمًا عَلَى مَنِ اتَّخَذَ عَلَيْكُمْ وَلَا رَغْبَةَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إن الله يحفر ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحديى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يغتغون فضلا من ربهم وردوانا وإذا حللتم فاسقادوا ولا يزمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا تعابنوا على البر والتقوى ولا تعابنوا على البسم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد القصاد شكرا مباركا عظم جليس و ترتیب و نخور و سوره از سوره که در آخر زندگی سرور کائنات ناصر شده این سوره مبارکه مناسبت و رفتش با سوره نسا و سوره قبل از نظر نام ارض کردیم معایده به معنی است چون در این سوره مبارکه تذکره معایده حضرت عیسیٰ علیه صلی علیہ وسلم هست و ملاصبه سور دا معایده نکنید حضرت در مانا سروران گرامی در سور نسا اکثر مزا امور انتظامیه رعیتی و حقانی بیان شدن و درباره باری توحید مختصرا بیان شد با الگانی آداغری و الله و ناتوشیکو بهیش عادقت شد. وقتی مره را هم بیان شر چنان مرد و نائلاتی اسپرداهی آمد که بهیچ لذا اقرار انواع شرک در بیان دونو شرک مادری، دارید، شرک فیلی و شرک اعتقادی یکنو شرکی که در اعتقاد انسان شرک جامعی گیره غیر خدا را حاضر، ناظر، غیر دار و تسرر مشکل گشا، پریاد رس، داد رس، انسان تصابر می کنه خود شرک در اعتقاد جامعی گیره یکنو شرک فیلی هسته که انسان ایک صحیح آمالی انجام می ده که این اعمال ها شرک مصاب می شکن اون هر شرک پیلی می ده در این سوره مبارکات هم شرک پیلی هم شرک اعتقادی تطفیلا بیان می شکن در اتدائی سوره اللہ سبحانه و تعالی شرک آئی پیلی را بیان می سکنه و با شرک های اتقادی را زاجر و تحديد هم برای یهود و نصارا به کسرت هست چون روی سخن بیشتر با یهود و نصارا میشه خرافاتی را که یهود و نصارا انجام میدادن و خرافاتی را که مردم مکه انجام میدادن که مشکیل عربی سلمیت اللہ سبحانه و تعالی خرابات اعتقادی و عملی آنها را کی شرک پیلی و اعتقادی آنها در این سوره مبارکه اللہ سبحانه و تعالی بیان ملید این سوره تو بشمت دارا خشمت اول نبی شرک پیلی هست و خشمت دو نبی شرک اعتقادی بس در آخر سوره نِسَا فَرْمُونَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَلْهَمْ تَذِلُّونَ الله تعالیٰ تبین آیات و احکام را برای شما بیان می کند هم آیات توحید را هم آیات احکام را فرای شما برهنشت این تبینی که الله سبحانه و تعالیٰ دارت در این سرعه مبارک را من خدا سمانی بینید این سرحات ماداری میخواین سوره برکره آل امران نسا و این مائده این سرحات سرحات مدنی هستن روی سخان با یهود و نصارا هم هست و و مشرکین مکه هم و این کنیست هستن انها بشتران آود دارند و دارند تعیم نیکن بین خاطر اللہ سبحانه و تعالی در این سوره آیات توحید را که مسائل اختلافی و مسائل متنازی و مختلفی اللہ اللہ را تبیین میکنه، تبغه بیانی که پرویدیو بیان اللہ لکم، اللہ تنها تبیین میکنه برای شما آیات را، فقط شما را هدایت دهی. در آل ابراهیم، در سوره بقره. مسئلہ توحید بود یک مسئلہی که بشیار محرد النجا و اختلاف بود تحریمات الهی، تحریمات غیر الله وزور اللہ، وزورات غیر الله من امسا هم, هم عرض کردم، توحید آدم انجا در ابتدای صورة غسمت اول که نفیه شرک غیری هست همینچه آر چیز را بحث میکنم تحریمات الهی، تحریمات بیراللہ و نظر اللہ و نظور بیراللہ نظور اللہ و نظور بیراللہ پس مجددن تکرار می کند تحریمات بیراللہ اون چیزه که خدا حرام کرده تحریمات بیراللہ این غیر خدا حرام کردند ون لگه ها این حرام کردند نظرهای الهی و نظرهای غیر قرآن الله هر نظر حکم هر چهار باهم مطابقته تحریمات قرآن لارا انسان در اعتقاد حرام بداند و اذان را استفاده کند تحریمات قرآن لارا در اعتقاد هم حلال بداند و آنها را حتما انجام بی استفاده خود بیارد و آنها را به مصرف برسانه نظرهای الله را ادکاد را حلال بداند و اذان را استفاده کند ولا اضرار غير الله لا تكاذر وعملا حرام بدع قبل ان تبدا شروع كنار در قسمت اول ايات الله تعالى كتاب ني قرر يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود مؤمنين ايفوا شما عقد ذهاب عقدهایی را که بسته مراد أذين از این عهود و عقود که خدا مراد است ایفا سوره ایصا یا یا الذین آمَنُوا با اُوفُوا بِالْعُقُودِ یعنی عهد جمع اقدا که اقدا و اراده را که شما وقتی که علیمه خان شما با خدا این عهود و پیمان را که حلال ترا حلال می داند و حرام ترا حرام می داند از شما و رسول شما اطاقت می اللہ تعالی می کنید این غرار داگی بی که شما بستید امرا ای ایفاق کنید او خوبی لگو کنید احضاها و احضاهای را کبا خدای در جلال درستید امرا ایفاق کنید آوردن ایمان یا اون احضایی که خدای عزق و جل در طول تاریخ از بشر گریبتی بواسطیم اعظام و ارسال انبیاء یا اهدی که خدا در عالم <سؤال> ارواح ارواح گرفت که الستو برد بکنم همه شما گفتی ارواحای شما گفتن قالو بلا این اهده ها همه اهده ها را فلنقام میگیری تمام اهده را که شما با خدا دشتی ایفاد کنی یا حتی با بندگان خدا اگر اهدی قولی قراری داری اون اهده را ایفاد کنی نقصه اهد نکنی بیان تحریمات غیر الله وقتی صحابی که غیر خدا حرام کردند بیان آنها از اوهلا شروع حلال قرار داده شده برای شما بهیمه الانعام حیوانات چهارپا بهیما و بهائم از بوه هست حیوانات را بهیما میگن که گله کرده نمیتوانم مطلب خود را بیان کنم. و اضافت بهیم در طرف عمیم این اضافت اضافت بیانیه است. حیوانات چارپا بهیم که تو میگم حیوان انعام به معنای حیوان چارپا. این خاطر میگیم که اضافت بیانی است مثل خاتم و فیض حیوانات چهار پا شما حلال کرده شده درضا الله سبحانه و تعالی این حیوانات چهار پا جای دیگر در قران عظیم الشان تخظیم کرده به فشفه یا ای الذین آمنو لا تحرموا طيبا ما حلل الله لكم ولا تعتدوا اي مؤمنين حرام مکونید با چیزا یعنی اون چیزا که خدا برای شما حلال کرده تجاوز نکنید در حدود شرعی که الله تعالی دوست نداره متجاوز بوندا بخاری مما رزقکم الله حلالا طيبا یعنی اون بهیمه انعام که فیباتاً و خدا برایش همه حلال کرده هل برا استفادت کن اثره بخود حلال و حرام درست نکن حالاً مشرکین مکه شمار نو حیوان را چهار نشسته حرام کرده بود. در آیه سدوسه ورحبزنید. ما جل الله میباهیره و لا شائبه ولا لا ولا و لا حام. ولكن الذين كفروا يبترون على الله الكذب و اسرهم لا يقبل. آیه سدوسه صوره ما اد. این مقصد اینه. این ها چهار نو حیوان وحیرہ صائبہ وصیلہ عام تشریح انعیرہ منجا منی کننم این چیز هارا انہا حرام کردون این ها چهار نو شطرہ با چهار نام یاد می شود وحیرہ صائبہ وصیلہ عام این انغاو اکسان نامحای اصلا کینہا را مشکین حسود ترد تو خود حرام کردن تسئل چارپاها و حیواناتی که اللہ تعالی فرمو سمانیت ازواس من المال اسلیل و من الزال اسلیل و من الابیر اسلیل و من الوکر اسلیل بود نرو مادا نیشم نرو مادا خسطورم نرو مادا دابم نرو مادا در دنیا اللہ تعالی این چار حیوان چارپاها شکر الله تعالی بنا انسان ان حرام مشروب انہا اثر خود ان چیزار حرام نہیں کر دت بناں الہ بغیر چیلہ اللہ تعالی, ببتیلہ ببتیلہ اللہ تعالی حلت ما یتلا علیکم ان حیوانات چار پای کہ حکم شان رسما کلاوت کردنی جانے حکم اون حیوانات چار پا کہ حکم شان رسما کلاوت کردنی دوں شوا کہ در ہر متاع ایکون میں تا تو ادم الخنزیر وما اوکل لدی غیر اللہ بے من خلقہ موقودہ وما کل سبو الا ما تک وما سو بہ علی النسخ و انتخاب شروه بالاصله، اینها و شد دیگه همه شما دی در ات حرام درست کردی، اینها حرام در حال غیر اهرام کننده سید باشی، در حال شما داری، در حال ساده بر برای شما حرام سید همه تمام شکار، خرگوش، این پا که برای شما حلالن، شما در حالی که غیر حلال باشید، در حالی کی احرام داری این غیر دو ترکیب که من کنم حالی حلال قرار شده برای شما حیوانات چارفا، خان، اون حیواناتی که حکم بر شما قرابت کرده می‌شود. در حالی که شما حلال سید هم نباید در حالی که ائرام دارید. یا این غیر محلی سید خبر برای کھانے محضود کونو غیر محلی شوید و انکم هنو باکت شما غیر حلال کنینده سید در حالک شما احرام دارید در حالک شما احرام دارید شید را حلال کنینده نوست شید برای شما حرام دارید ببینی اللہ سبحانه و تعالى میگه که من یه حیوانات چهار پا برایشونم حلالن. چرا چی شد؟ ہاں ایلاع ما یوت لالکم. اون حیوانات چهار پا که خوشبرسمان تلوات میشید محرامه که من عرض کردم خورم تلک مل بت تو ادمی نهان حیوان چهار پا اینا حرامن. و در حالی که شما غیرهلال کنید سنت بازی، سنت هم توان چارچوب، سنت شکار با تمام اقسام خودش در حالی که شما اهرام بستید، احرام را از آیدان بستید، احرام را از متنج بستید، احرام را بس از آمریکا بستید، وقتی شما اهرام بستید، لذا در حال بستن احرام سید حرام میشه. اگر محرمی در حال احرام سیدی دیار شکار کنر و یک میلیارد باران بسم اللہ اللہ و اکبر کنر بسید شکو گره و حرام حرام نیست در حال احرام سید و شکار برای انسان حرام این جزر محرمات الانیه است کمین آهورا غیر محرم شکار می کنر بسم الله الله اکبر کو نہ بره یا بسم الله الله اکبر کو نہ و اون تیری تیر فقمانہ رت اور یاد کو نہ میزنے حلال ہے لیکن اگر حاجی نہ بسم الله الله اکبر نہ کرے ہر چھ گد منوبت یہ حرام نہیں ہے از محرمات الہیین پس الا ما یتلا اوہلت لکم بهیمت الانام تردید تحریمات غیر اللہ آنچی تغائیرہ کہ تیر خدا حرام کرده صاحبہ بهیرہ و حم و سیلہ آنها حلال غیر آنهای کشم حکم شماع تلالت میچه و شماع باشی غیر محلیسته خوب چیز یہ کیه برای یک موغا حلال ہے یک موغا حرام کمی سیدرہ مثلاً این مردم اصررمی نیدانت اگر محرم شکار کنن او حر چهر بسم اللہ, اللہ اکبر بگیر سر بگیر او حرام ہے بس انا حرام بی اضافه ای که حرام قابل استفاده نیست هم اثر پی شریعت جریمه آنی شد جریمه آنی شد خوب غیر محرم شکار کنه بسم اللہ اللہ اکبر کنه سر غیر شکار شکار دیگران رن کنه او حتی اگر بازد طرف کنه ہم که با احرام سر و لا دیگرامی بسیار چیزهای حلال بر او حرام میشه محرمانه است که وقتی او احرام می‌بنده و نیت می‌کند بسیار چیزهای حلال را با خودش حرام می کند محرمانه است خب بخشی این هم می आए الان ان الله يحكم ما این یک ثواب اعتراض قدره چی محرم بیچاره حرام کرد غیر محرم حلاله در حرم الائی که برای محرم و غیر محرم سید شکار حرام لیکن بیرون از حرم برای غیر محرم حلال برای محرم حرام چیز یکی برای یکی حلاله برای ایتی حرام اینچه اغلو اینچه دادشو میموید احرات میتونی اللہ این سوال جواب دے دانچه ارادت یک شیرہ برای یکی حلال می کنند برای دیگر یک حرام می کنند در یک حالت در حالت دیگر حرام ہے شیخمون یکی ہے خوضا هر وقت می کنند می خواهد کسی حد اچرا نداری چی اغل شما کار می کنند اغل اگر ما کار ببندی اغل دیش اغل نمی برای مهریم حرام، برای غیر مهریم حلال. چیکی؟ غیر مهریم شکار کناد حالا مهریم و غیر مهریم دخولن. اگر مهریم شکار کناد هم بر مهریم حرامه هم بر غیر مهریم حرامه. غیر مهریم هم نمیتونه دخول. وقتی مهریم شکار کناد، غیر مهریم شکار کناد مهریم و غیر مهریم دخول. قوله تعالی حکم مطابق اراده خودش به آنچه بخواهد حکم که حلال برای دیگری حرام شما اعتراض نداری بکنی شما بنده نیستی شما بنده بنده عبد این هم اللہ تعالیٰ جواب حافظ مانا دا چی انتو برم جملہ حالیت از زنیر غیر محلیس سے محلیس سے برشک شما غیر حلال قنیدس سے در حالی کی شما احنام دار جملہ حالیت اگر غیر محلست دید را حال بکنی غیر مضاعف محلی دیگر بخاطر اضافت منشکتا دیگر این حال بشیع سمیر لکم، محلت لکم، در حال شما غیر محلست دیگر باشی این تحریمات اللہ بیان شکر چیز غیر الا ما یطلاح علیکم کن من عرض کرده از انما تحریمات الهی بیان غیر محلست دیگر باشی خب بیانه نظراه الهي نظراه الهي بيان سندرين ايات يا الذين امنوا لا تقتلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحج ولا القلائد برا امن البيت الحرام سما حلال نداني شعائر الهي يا دا. نانتي دائره یادگار <سؤال> خدا کا سلمان ہمارا حلال نہ یعنی به نہ چنکو احترام ان ہرب کیا دیا حلال نہ دانی دی یادگار ہے یعنی حد کی حرمت نہ دی احترام نہ احترام ان ہرب کیا بیاری شاعر الہی ہر ان چیز های کی یاد خدا کا یادگار خدا کا برائے خدا تو عیش حالا یادگار اللہ مساجد الهی مسجد الحرام مسجد النبی تمام مساجد این هم یادگار الهی امائی که خدا یکنه ها احترام داده شهر حرام چهار ماه هستن رجب ویساد ذلحت و محرم این اگر کسی بس ما تجابز نکرد خورم دی را بچه هاییاری گناه در این چهار ما بیشتر به استفاده سنگینتره و به احترامی در این ماه الان میگویند که حکم شان مفروضه اگر کسی بر شما تجاوز کرد شما تجاوز کنید احترام جو اللہ این ماه ها که الله تعالی این ماه را برای عبادت خودش نامید کرده این ماهای محترم را احترام داری حلال نہ دانی یا حد حرمت نہ جنگ نہ جدال نہ کنی معصیت در همه ماه ما معصیت حرام ہے کیونکہ خصوصا در این چهار ماه حرام بیشتر حرام اسی لیے کہ انسان گناہی بیونت محسید انجام بگه هم کناه ارسی خرابه لکه اگر کناه در مسجد در انجام بگه بیشتر خرابه حقی حرمت بیشتره حرام ندانی دیانی حقی حرمت ندنی یادگاران را الهیره ونشهره حرام را این تاکیف شد بعد سامی شاایل الله آم فیقا خسوسا ماه حرام را ماه حرام را سیل اکلام زنسی ولل حدیه حد اون نظر الهی و خوربانی که به حرم برده میشه گا بوسفن شطور که به حرم به عنوان نظر برده میشه من الان تونجا بوسفن ده حادیان جمعی خرم غدیم هر خجاز و موتمرینی که از اطراف مکهه و کرده من حرکت میکرده حدایات بود هرکت شطور شمرا بود بوسفن شمرا این نظر حرم نظر الهی اینو میگرد حد هر آن قربانی که به حرم برده بیشه او را حدیه میگه خود حدیه آن گوسفند گستند، گاه، شطور خصوصاً قلائه اون شطور را میگن که به گلوی او یک چیزی میبستن شرمی، کپشی، پوست درختی، محاری به گردن اینها بستن. فی این هارا بدانند که ناظر حرام داشتید این هارا دیگن کلائه تخطیف شد بعد از پاند خاید یه آرس گاب ویسفن شده و کلائه اومن شده یا گاب ویسفن که بدلوی چیزی نمی بندن کلائه در اومن شده تکسیز بات افتامی این آمه چورمت مکنی سوار نشی، اینها بار نکنی را نکنی که حرم بردرمی شد خلا این روزا ها قموماً آجیاء کل درمنا قربانی دنیا تاجراء گوشوندو و غاب روزا می رشانند آجیاء ها قربانی ولا آمین البيت الحرام هم کنیم گیت را منکونی آنها ایرا که کشت بيت حرام را دارن آمین به معنای آسیب آنهاي که ارادہ و کشت بيت حرام را دارن یعنی حاضیها و متمرین را حتی حرمت نکنی مراد از آمین البیت الحرام که حاضی و موتامیرند، کدوم حاضی و کدوم موتامیر هست؟ بعد میگن که وقتی مکه مکرم فتحشود، مشرکی برای حج میامد. قبل از سال نو حج میامد. قبل اینا آب سعابرا و پیغمبر را مانه شده بودن از خاله کار الان شما انتقام نیست آمین البیت الحرام را لحظا اذیت و نکن مشرکین را در حالی که این آمین البیت الحرام طلب فضل رب را می اونجا به اعتقاد کن اما مشرک هم برای خدا می کن به اعتقاد خود این ها طلبدار فضلا من ربه و طلبدار رضای خدا حسن طلبدار رضای خدا حسن بی اعتقاد تجا بزامهم زیر یبتغون فضل من ربه و رضوانا بینیسی تاکی در زین شما بماند کہ اگر مراد از آمنین البیت الحرام مشرکین باشد استوناکو جهت رابداری فطرم راب بهیم و رسول. اگر مطالعه کردید گاهی خود و بر خدا پی نمیشه کمی کنه. ما نابود الله الله ما شرک و بیران تک سر محبت خدا مگر مشرک زمان ما این شعر را نداره تو مشرک زمان رسول اللہ برائی خدا شرک نکر این مشرکات جازن چار نداره تو خدا تلچیز را در ایک بیار بندگان خدا تصور بکنند و خیال بکنند جنت و جهنم و شعظت و شکاوت و عزت و تصرف و حس و نیست و این حفیق بکنن که اللہ تعالیٰ آبی ایک آر نشسته وقت دوارتن فراما چیزی اختیار داده. این نفع با خدا خدا هستن بندگان خدا هستن بندگان خدا هستن تلک امت انکت قلت لها ما قسمت هرچی کردن برای آنها هستن خوب باقی نگلنم اراد از آمین البیت الحرام مسلمان که قابلاً مسلمان نبودن لحظاً با طلابا خوب جنگیدن حالاً مسلمان شدند و مواهر شدند و آمدن که خانه کعبه را تواب شما نگاه کنیی همونها بودن که ما را در حدیبیه نگذاشتن لحظاً لان انتقام میگیری. چون ریاست خانه کعبه خانه کعبه خانه شما ہے خست خانه کعبه خانه شما ہے لحظاً اللہ سبحانه و تعالی فرمود آمین البیت الحرام را که مومن شدگان تو طلب فازل راب می کنن و رضوان و ایزا انها را حضرت و آذار نکنی حضرت و حرمتشو نکنی زنجا یک به اسطلاح رو بینا نشان بیدید و چشم را سرخ کنید برای آنها شما بودید که ما را نگوزاشتید الان یا سینه بزینید انها را لازدی که بیت انها را نگوزاری راز را و مرزی که اگر اصدار نگذارید اینها را عذیت نکنید آمین به معنی قاسدید این آمینی که ما در میخانیم در آخر فاطرها اون نمشدده نمد دارد آمین این هم مشدده از امه امو اسمانه قد کردن او آمین غیر مشدده او را در مشدد بخانید اشتباه خو؟ حالا در وسط می گے در حال احرام کی سید بار شما حرام ہے فکر می شود چی حرام شد دیگر حرام ہے حرک حاجی شد و محرم شد دیگر دو مرتبر حق ندارد به اسطلاح سید نکھو اللہ تعالی می گئے نا ادا حلل تم فرشت آدو وقت احرام حلال شدید حاجی صاحبان و مطمئرین فستاد و آزادید شکار کنید بیرونا حرام شکار کنید و گفت لحظا اون ادامه آمین البیت الحرام که مسلمان شدند و لغز در ای بیت میان، اون خوبز و عداوتی که بین شما و آنها بوده شما را برنگیختن نکنند بخاطر انتقام گیری، بخاطر اینکه شما برانده تجاوز کنید لا یجر من نکم شنعان نکوم برانگیخت نکنت شما را ای مومنی بغض قومی از اینکه شما را اون قوم مانیست دل از حرام برانگیختن نکند شما را بغض قوم به سبب اینکه آنها شما را از مسجد حرام در هده و قبل و بعد از هده بیا نکود در مسجد الحرام بخاطر این جرم آنها شما را وادر نکند که انتاعت دو شما تجاوز دو مفهول الهیتونی من نکوم انتاعت دوی شما را انتاعت دوی اینا مسلمان شدن یبتغول فضل من ربه و رضوانه میکنن حالا شما انتقام بگیری یک زمان آنها شما را نگذاشتن برای حج حالا شما آنها را نگذاری این کار را نکنی لایجه من نکن خرگید خرگید برانگیختن نکنید شما را ببز قومی بسبب اینکه مانشدن شما را از محسد حرام برای اینکه شما تجاوز کنید حالا شما آنها را نگذارید و حرام شما آنها رحمت دار مسجد الحرام در سنگ لا قرار بدی مسجد الحرام یادگار منه بودی تاریک کا دور بر خانه کعبہ بجردند من خدا را یاد کنن من صفا آئی کنن من کنن. و مروه سایه کنن به من یاد کنن بن اجتماع مؤمنین تعاونوا علی البر و التقوی شما مواجن نیکی و تقوا باش کسی که نیکی میکنه کسی که تقوار رایت میکنه شما معاون بیرو تقوه باشید خانون اصلاح مزورید خان شما اینده تعاونو علال برو بر بر و تقوه تعاونو عمره تعاونه ی تعاونو شما معاونت کنید یه دیگر را کمک کنید یه دیگر را بر نیکی و تقوه نیست شما هم یکی نیکی تلا بیتوره قبله شما هم انتقام بگیرید ولا تعبنا على الاسم والأدوار. شما معاونة نكون دي الجراث براي جناه. إن اسم مقابل تقوىه. وبراي التجاوز. إن مقابل در. شما الجراث معاونة نك. إن جد أخر الله شما وزیفه شما برای غناه کسیر معابنت نتونی بر کماشه برای تجاوز کسیر معابنت نتونی شما معابنت در رسطوائی و معابنت اسم و قضوان نیست نکنید شما از این دو آیا خیلی مطایل و استمباط کردن سر برانی سر اکثر بزور با دوس راه کار شدن این شریکیت است. با شرابی، با هر کسی که کار خلاف شریعت انجام میده، معاونت این معاونت که لحیم و عذوانه سحرامه. همیشه انسان معاونه در رو تقویب هر کسی نیکی انجام میده، اورا معاونت کنه تا نیکی بوده اصلا انجام میده. به تقوی و ریسگاری. نسخه امال را طلبان تعالی بین کرد رتک اللہ از خدا بتزکیم بر رو تقوی باشیم اسم قدوان نباشیم برای گناه برای سرکشی و تمرو را معاوینت نکنیم شما بلا تحقیق که این طرح چرا؟ امین امینو چقدر معاوینته؟ گناه هست؟ بخاطب فامیله برین در ازدن، برین در ازدن، این فامیل را برای گناه و برای قدوان معاونت کردن خود را بدبخت کردن و حتی او را بدبخت کردن رسول علیه صلاح صلاح فرمودن شما انصر اخاک ظالمان و مسلومان شما ناظر برادر خود در حالی که ظالم هستن در حالی که در هر حال شما برادر خود را نطرت کن صابت کرده یا رسول اللہ! مدروم نصرت نسرت برای ظالم را نه ظلم برای ظلم, ظلم این با ظالم این ظالم را, این ظالم را ظلم مکنه. اول سراخط ظالما و مسلیما ظالم صبر و یاری به دیو و مرغلومه کہ ہم و یاری دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ کردا شما ظالم را برائے ظلم نگذاریش ما و عبین سر شما ناکری محسن رو عبین نا نگذاری ظلم نکم ان الله حسید الاقام اللہ تعالی سخت اذاب میدرات لغذا اگر محابنت اسم و عدوان کردید باش شدید و اقاب برمی کرید و اون به عذاب شکت مجازات میکنند لذا بترسی محابنت نکنی على الاسم و العدوان از خدا بترسی باش تورا ملامت کنند نامردیه یه فکریه بلی باش بگن از خدا بترسی که خدا شدید و هر حرص خدا را از اینجا بگیر که اللہ تعالی شدید و لعقاب حرص و شما سخت عذاب می دهد تفصیل تحریمات الله خرمتان ایتم المیتا مرداد این همه مسلمان هم میدانند دانا ننیخوا. دم حرامه، دم مذتوب که از مذبه هم منحر بریزه چی این دم مذتوب از شهربا باشد یا از دفا مرغ و غیلت فنه کن حرامه ایلن نوشته کردن، میتر چرا حرامه؟ لبا تا ایلت ها بودور نوشتن دلائل نوشتن، برای دم هم نوشتن لکه سهلتر اینه که این خون وقتی با میتن منجمد میشه همین خون نجیس و در حقیقت همین خونی که پر از میکروب و مرض هست او با خون منجمد میشه ولی ها اون گوشت اون صلاحیت و قاکر ازدس میده نام خدا اثر بشیار بزرگی دارد خطر قطرناتریم جراکیمی میکروبی مثل ابلیس را آتش میزنے نام خدا و جراثیم جراکسی مهارا نام خدا آتش میزنے و ایک چیزی کی منصود شده از طرف خدا قلتش در ذهن ما آمد یا نا آمد ما میپسید طبیعت های پاک و طبیعت خوب لحاظت ایک چیزی مر زیر مرغومی بنظر بی میاد یاد دیتا خاطر اللہ تعالی حرامش کرده حکمت آئی زیادی آئید وی چیز که سرین تو زیر میره این خون کثیف باق وقت او حیوان می میره زعب ننیشه این خون کثیف باطرمان گوشتش مخلوط میشه جدا ننیشه لیکن وقتی این حیوان بسم اللہ اللہ روپر ببطلیش و سرش بوریدن میشه میکن شما سرش بورید خاطره خون نمی آه. اگر دید خون خیلی غلیل سی اگر خیلی هم کمی گرمی دارستم آسان خب مدت قیلانی دو دست شکس بگوید هیچ خون نمی این خون کثیف میره بابوش خاطی میشه خون چیه؟ خونم از نظر حتی چی دیدیه که حتم نمیشه پیرا نمیشتر کردم حتم نمیشه و پر از میکرون هست در زدن این حیوان هر نو مردیه با وقتی سرمی بورید با خون میاید بیر ولی وقتی خون را او می میشه می می می می می می می می خون داخل او منجمه میشه ولی اصلا خون که خودش چیزی کثیفیه، چیزی خوبی نیست در حضم و در پختان و در هر چیز همین طور آبا کش نگاه کنیدی خون, خون چقدر کثیفه، چیزی کلیم و همه در دنیا میگن که خون مگه فلانی خونش کتیف اگه همیشه سرطان خودش خون انبه امی کنه و در ازای این حیوانا مالیت کدوم حیوان خون فاکه کدوم حیوان خونش, خونش, خونش. نافاکه؟ اللہ تعالی گفته این دم دم مسئول این کتیف این اندکوند نگسه. هر چیزی کی برای بدن انسان و سلامتیت انسان ضرار داشته خدا حرام شکر خون پرست میکروب ہے و پرست کساطت ہے لحظ اینا نقل خاکن خونی کی بابوش میمان ہے اللہ طبعان و تعالی داخل بوش میمان ہے اونم اللہ تعالیٰ تجا حرامیشنی دم محسوس شکر لحم حنزیر گوشت کے حنزیر این هم از نظر تنظیبیات در گوشت خنفیر چنان میکروب های هست و چنان کسابت های هست خنفیر بگم گو میده و کسابت هم زیادی میخوره به خاطر اکی میخوره کسابت و نجیس به این خاطر گوشت شم نجیس هیوانی بیه غیرتی هیوانی خیلی چاق و پرده و خیلی گوشت چربی زیاد داره بختن شم آسان نیست. مخلوط های خطرناک یالا دادن تمام چیزها گوشت گوشت گوشت از نظر امروز هم گوشت داده شد الله تعالی یکی گفت که گفتن در این گوشت میکروبی هست که 470 درجه آتش شراره داشت اون میکروب که 470 درجه آتش آتشی در اختیار داشته باشد چه حرارتش باشد و اون میکروب پرسا بشه بین خاطر الله این حرام کرد. لحم خنزی با تمام اجزاج و ما لغیر الله به و آن حیوانی که صدا بلند کرده شده از برای غیر خدا علیه برانه اینجا ما هم و بهی به معنای علامه است لغیر اللہ بالایل لتعزین نید آنو هر آن چیزی که اکرین اوهر الله از احلال احلال به معنی بلند کردن صدا نظری که مردم نیدان صداشو بلند میشه که نظر ملک شعرکو از بی دوست دوستش یا قلان امامه یا قلان نبیه تن صدا اونجاست صدا بلند میشه هر چیزی که بر آن صدا بلند کرده شود اونم حرام. مثل یک در ما اوهلہ لغیر اللہ میخوام برای شما بگم تا بفهمید. در ما اوهلہ به لغیر اللہ این هم مفصل از محرمات الهی میتو دادم و لا ما و حلا الله احلال زمانه رفع عربی مغولی دارن میگن اهل فلانو بالحج اے اد رفع صوتو بالتلبیا عادی وقت احرام نہیں بنده خدا ربان نکنے لبیک اللھم لبیک لا شریک لک لبیک لَبِّكَ اللَّهُمَّ لَبِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِّكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَا که احرام باد، باید را با صدای بولان و در مسیری که دارد میره برای حد یا عمره، باید حالت احرام تحلیه با صدای بولان هم تلیه این خاطر ارابی که احل بلانون برحاد ای ادا رفع صورت و بیتل بیا ای لبیت اللہم لبیت یا مثلا در کتاب هاتی ای ایک سر شما خاندی و استحل السبی و ادا سرخ اند الگلاده استحل السبی یعنی اصطدار بلان کرد بچه وقتی بچه متولد میشه علامت زندگیش اصطدار بلان میکنه انجا ارابی که استحل السبی مراد مراثبه ان اندامي حسداب مشاء الا ذکر غیر الله تعالی از مخلوقاتش هر مخلوق خدا خدا است هر چی که هست از غیر خدا اونها غیر الله ذات میشود الا ذکر غیر الله تعالی از مخلوقات اون مخلوقاتی که یعبد مهنوس تعبیما دینی است ما إنسانها أن هاد التعاليم يكون التعاليمات الدينية وهي تقربون إليها بالسبائى وتقربها. ده ينسى خدا إنه حرام كده. بيجي أنهم من عبادة غير الله. خدمة وحترم وعهود الله بغير بي الله. بينه. فين عبادة غير خدا؟ فالأكل منهم مشارکت لآله و لهم عليه غير الله غير الله و هم ميشه هم ميشه اين غير الله را اللہ تعالی بی این خاطر حرام کرده محبت شما رسلمان ها با مشکیل همقار و همفکر نباسید احمد نادر غیر الله بی پر شما همی قرش ما با لحمد فکر نباسید خدا بی این خاطر حرام اشکر ده من عبادت غیر الله و اکل با اذ این نظر غیر الله مشارکت لأهلی و مشایئت لهم علیه هستی ہر گامی ہم فکری میں یجب لا اقرار انکار کنی حرام اعتراف ان کو حرام ہے تم نہیں کھورید عبادت کرتے ہیں غیر خدا الگ بغیر حرمت دین خاطر عبادت خدا حرام و جملین اطلی کم میخان براش و اینه و یدخلو کی ذالک ما ذکر اند زبی اسم نبی او ولی در همین ما اوهل نبی لغیر الله داخل آن حیوانی یا آن چیزی یا آن حیوانی که وقتی زب می کنن آن را نام ولی یا نام نبی را برانی و کما يفعل بعض اهل الكتاب و المسلمين المسلمین اهل الكتاب هم اسمی سارمی بنا اسوے و غیرمی بنا و جهالی المسلمین هم همین کارنون کن بیاده یکی از امام خاک آبا حتا مادر برد ایر اللہ لی. یعنی شماع برخورید بیاده قلان یعنی یاد کنی دیا حسین برخورید نست اینه. لکر اسم الله ننیاد کرده شدن آن کولا. او کروس ملله یاد کنید نام خدا را. او بیاد کلان خوری دیگه همینه. جهل مسلمین. هالدین اتبعوا و من قبلهم و تار ولا ناتهن باً قباً و زیراً فزیراً. همین مسلمان هایی که وجب دو وجب. خدم بخدم يهودون سعرانا دارا اتبار لكم ودقاء كراثمية المعذوبها على النصوب النصوب نجد ما ارتبخ المسيط شما أعرف لكم ومنها هرام ميتاد دام لهم خنذير ما أهل لغير الله والمنخنكتو اون ایوانی که شما اون را خفا می کنید ایوانی که گردنشه تاک می جند و کنیشه می کند ردین کردوشه ها را می کردن چوبان ها قرد چیزی نداستن گنجش کنار و پرنده ها را سرشونه می کندن این جوز مرکتنی کرد و حرام گنجش سرشی شما کند حرام این در منخانکا خفا کرده شده این حرامه مو قوضا شما حیوانی را ای چوب می‌زنید؟ و میزنید و میمیره علامی برای شما حرامه چوب خورده و مرده و شما زبشنه کردی و المتردیه از بالا از تو از بالا از تو از, از حق حیوانی غلطه پایی و می‌میره. این را ملن متعدیه این هم حرامه و النتیحه تو دو تا دهیوان دو تا گار دو تا گوچ یا دو تا خوزنر و هم نیچ یکی دیگری را شاخ شاک ملدنش کمشه شا بارا ملدنشه میشکننی میلی این هم حرامه و ما اکل از تاو گرد گستان را یکی سوچه خورده یکی سوچش گذاشتی این هم حرامه الا ما ذکیتون مگا آنهایی که شما آنها را ذکات کنید یعنی ذابت کنید این الا ما ذکیتون استثناء از منخلکه از سر ورده مرتب با ذاب حلال میشه او لحمه خندیر با ذاب حلال میشه ما اوهل بهی لغیر الله کسی جای دیگر غیر عظیم شاید در سوره بکره خان آم مائده نه در نهر اللہ تعالیٰ ذکر کرده چار چیز محرمات استشما ندارد این آبا زبا هم حلال نمیشه اگر شما ناظر غیر الله نظام بکنین بسم الله و اکبر کنین لکه اعتقاد شما اینه که ناظر غیر خدا هست وہ حلال نمیشه ودق در محرماته إن إلا ما ذكتم استثناء من خنقتهم وفظاً وتردياً ونفياً وما أكلت شبه إلا ما ذكتم ما هو الذي غير الله استثناء خنزير استثناء خنزير بعضه حرام نجى أرجو هى أحادي لغته بين خاطر إلا ما ذكتم إلا ما حالاً شما دیدید دوستان دره خفه کردید صناب گردن شبتاده گستان خفه شده دستوبا میزنید شما رسیب بسم الله بس اکبر سر شبه بودید همون نتا نشده خب هلال میزنید یوانی را خربوشی را آهوی را شما سر شبه بودید چوبید این حیوان رفتا میخوره و حالا داره دستوبا میزنید شما بسم الله اکبر کردی سر شبه خب این هم موقوده و هم زمشون حیوانی از بالا افتاد، کمرش گردنش شکسته حالان دستقا میزنه در این مرد شما شایشه میگورید میرسید می میگورید لحظا این حلاله نتیه دوستان ده ها هم شاخ میزنن دعوی میکنه کسی گردنش میشکنه خیلی معجنه شده است خوچ مابودنر خیلی زودگوزنر را گردنش میشکنه خیلیم کتاب داری بود یک چوبانی دید و دار بزرگی داره با کردن داره دار تو جنگ خیلی نکه او اپتا دارمی نیرے از ناراحتی این کونچه هم گره تو صحیح شدی کیونکہ کون دارمی نیرے کونچه هم گفتی پیز نبیتی دارو رو تم از دونجا استفنا یعنی که شما داری آفتی دران بغییه حیاته استراب استراب از مزبوط اگر کردی و الغذار اما تیش شعیی خاطر حلال قردنش استثناء من جمیع ما تقدم ذکره من المحرمات سوائی ما لا يقبل افسیه من المیت و الدم و خنزیر و ما اکلا و ما اکلا از ربو بدالک ما اوحل لغیر اللائبه و المنخنه موفیزه و متردیه استثنان نیست استثنان از منخنه کبی این طرف دید شما دیدید که دوستاندرا خید زده بزنک پان شبو تر رنده گرد کفتا دوستاندرا ما بیدیم خیلی دوستاندرا زده و هموز دوستاندرا شکم شپاره کرده شما رسیدید و گسوان هنوز دینده هست گسوان توز نگی نیده شما هم گسوان شکمه را در اپارت پونی تاعترام در بشی نیتابی نیده گسوان در شکمشه پارت کرده یا ایک زبانی اردسته پر شروع کرده و رو بیچاره افتاده هنوز دینده شما ترشه بودید حلابیش أذ علي رضي الله تعالى عنه رواياته، وقد قال علي الكريم الله أشهه إذا أدركت ذكاة الموكوزة والمترديات والنفيهة فهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. ودارت استفهامي زين، دليل تنجيستش، شو مستس از موخم منخره شروع کرد زکات موقوزا متردی و نتیها ہاں اگر इनाम مردن تو تمام شدند حتی با یا گفتن الا ماذا كيتم از شبو استثناء هن چرا که در درنده و شما پورا زکات کردی اغنجا استثناء از ما اوهلن از منخره و بعد یاد بودن استثناء فقط از ما اکنون شروع کن خوب اگر کتیبه لات کنه که استثناء از ما و هلا لغیر الله هست این آیه دانه تنخ تخلیه جو کند که و ما ذبحه آن نشود این ما و هلا بی ما و هلا لغیر الله به آن شیرنی نخود فارچا پول نار همه نذره های غیر الله حرامه حتی پول را برای غیر خدا نذکنه این حرامه پاچه را برای غیر خدا نذکنه حرامه چون لبز ما آمه نان و شیرینی نذره غیر الله کنه آش نذره غیر الله کنه همه اینها حرامه, حرامه. و ما از صبح علم بطور ویجه سکرش کرد آنچه که زرخ کرده می شما بر نشانه ها اون هم حرامه برنشان آب دابع کرده می شود این تهمی چیزه میتا دام لام خنزیر ماوه اللہ لغیر اللہ منخنکا موقودا مترادیا نتیا و ماکل السبوخ و تهمی ماظبه علی النصوب نصوب چیه این واحد انصار این سنگهائی بودن فول کعبه عدد و غا سلاة و یعنیت و که صد و سنگ اونجا فهمده وَقَانَ عَلُّ الْجَائِيَةِ يَدْبَهُونَ و وَيَعُدُّونَ غَالِقِ قُرْبَدَنْ نی روی این سنگ کردن، سنگ لاسه، سنگ ابراهیم، سنگ اسماعیل هر سنگی محل از این بس آنچه که بر سر زیارت ها می خائن لهن النصوص فكل حراما ما ذبحها امل النصوص حرام ومن ثم تعلم أن شباد على الجنس ما ذبحها بعد ان جبت ميدان شان تزبذ قد مشوت الان النصوص و هو ازل ما وهل به لغير الله عز اينه سيعه تكون اغراض بعضات العباده لغير الله تعالى وخاط کرده شد مادو به بززیک لعزالت رحنی کی یتوهم انه قد یهل قد تعدیم الحرام اذ لم یکسر اسم غير الله عليه و هو من خرافات الجاہیت التي جا لإسلام المطرح خلاصة ما تقدمه إن الله تعالى أحل أكل بأيمة الأنآم والصائر حيبات رأى الهيوانات وما دب منها على الأرض وما طارت الحوار وما صبح في البعض ولم يحرم إلا الميت والدم المسوى لحم الخنزير وما أهل به لليل الله إن شي الله سبحانه وتعالى حرام کرده باقي أمي شي ضارة حلال این چیزها که زور علی این هم حرامه است که از شما این است که از شما به که بر سر میشه میشه میشه این خاص بات از در ما اوهلا لغایل لای بهی داخلمون، به کم بطور دیجاه خدا ذکر کر چرا؟ اکثر نزد ها به حیوان انجام و به شکل زعب انجام. چون انبات برای خدا انجمع بطور میشه. اللہ دیجاه لطاین یاد کرد. و همین که شما تقسیم بکنید باقی را این هم حرامه. تقسیم بال ازلام هم حرامه. خرمت انت تتتفینو بالعظلام به واسه چیرها تتفین کردن حرامه این چیر سرورانه گرامی تتفین بالعظلام تتفین بالعظلام سرورانه گرامی صورت غیر زیادی داشته میکن یک صورتش که در نفت العرب نوشته کرده اینه که آنها در نفت شریف میشیدن یک شطوری را برابر کول می و می خرید بعد این شطور را بیشت قسمت می کرد. تیر از این دهتا تیر شرم یک تیری شما حساب بونید یاد یک تیری یک تیر پنج یک تیر چار یک تیر سی یک تیر دو یک تیری یک بسوحش فهم تیر بودن کہ از هفت و شیش و پنج و چار و بحثلا سی و دو یک سی تیر بودن که یک چی بنسا لا لا لا هیچی ندرست این نوعی قمار و شرانسوادی حالان این تجارت رای شرانسوادی هم در اینجا داخلی هست این شانسی، این, این شانسی هم حرام تو چیزی تو این و اگر کسی در چنین کاری شرکت این نامرده و نامز می گفتند و می خندیدن برش که از شانسشون خودش می خب، تو این نام حالا وقتی که ده نفش کرید شدن ده دیر حالا در بودن سیران عطب کردن یک مجرسومه آویزان بودن می رفتن حالا این دفعه سرمه پرسون حافظ. در می آوردن او تیر حبس رمی میدارم. میشن اکنون تیرها برایشون نشانی دوت میشته بود همه موارد بعدی ندادن و این آقایی که در حوزه شانه میشد حبس هم حوزه در است بی تعلق میگردد این هم کودش نمیخورد برید است که کمرام میداد. میگردد تا چه شانسی برندی؟ در می آورد تیر دوم را در می آمدیکتند. نا. خب از تیر اول امید آدم برمسلم تایم می مالک نام ها ردید کنید نام خب تیر اول اما رشتن آماشا الله مال هرکس این تیر کده می آید این در مالک شده نام اول تیر می آید هرسانی خب اللہ از تیر کسامنه دارد اتمن نام ایتی در مالک کنه زود بیشاره که یکی در میاوید سا سامش که هیچی بیه میکنه اون شده که هیچی بیشن بیرمینی آمد این تفکیم بر ازلام خماری بود خدر خمار همی شانس باردیه یا به اصلاح شانسی حالا چی میگه شانسی حالا یک تاولوی می آید کول برابر می گیرد و یک بات بعده که لادری بزور یک بات بعده که خود برابر گرفته این معامله هم حرام چون نبی مشخص نیست اصلا سمن برابر میگیره و نبی روی شماش مبی در مشخصه شانسی حرام معامله زمانی حلت نیست در آن که هم سمن مشخص بشه و هم نبی مشخص بشه این نبیه این سوال هزار 50 هزار دل هم حرام شد لانکون فست این چیزهای حرام شده اینها فست یعنی از فرمان خدا هر کس تخطی کند او فاسقه و این چیزهای حرام شده همه حدود حرام را حلال بداند و فاسق درجه خوامل فشک است. این اللہ تعالی برای فاقید ذکر کرد. این محرمات اینها فشک است. ذالک و مشارلیش المذکون. نتیجه شدد اینها ذات فشک است. یعنی هرکی اینها را بخوره افاسق میشه. ذالک فشک است. با جمله معترضه اللہ سبحانه و تعالی ذکر می فرماید جمله معترضه اليوم یعسا الذين کبروا من دینکم فلا تکشوهم وخشون تیر صورت رای برای ازلام هم نوشته کردن ای که یک صورت آسان تکین صورته خدمت شما سیدی کردم والعضا در این تقسیم دل تمام در ان تقسیم دل ازلام برخیر کنشد زالکون فسکن و میخواستن عبارتی برای شما بخانون ای کل محرم من فسکن تقسیل فسکن و خروج من طاعت الله و رغبتون ان شرعیهی الى معاشیت تشبیره زالکون تسکن را اکلو من ما سلفا و من الله و شرعه ان شرعیهی الى معاشیتی اعراض هست از خدا بکرده معاشیت خدا این رحمن ذات یعنی کسی که به این چیزها حال می شود تقسیم بالعظلام می کند او فاسکه معصوبها لغیر اللہ على نصوب را می خورد او فاسکه وانا می بدون اون شراحیت خب امروز ناامید شدن کفار از دین شما جمله محترسه است. فشما دو کفار نترسید و بترسید از من خدا امروز من خامل کردم برای شما دین شما را و اتملتو و اتممتو علیکم نعمتی و هم اتمام کردم بر شما نعمت دینی و دنیایی خود را و پسند کردم برای شما دین اسلام را دین حق ردیتو لکم اسلام دین اسلام را من برای شما دین پسند کردم خو این جمله موترزه آمد ببین از احرمت علیکم المیت و الدم واللحم الخنزیر تا فا فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یک آیه کو محرمات ذکر شده این چیزها حرام حرام حرام تقریبا 11 چیز را الله تعالی در این آیه حرام کرد بات در صورت استرار آخر غیره تنسوه می کنم باید این وسط من با شما حرفی دارم فمن اس طور را که این یاد حرامه. چیز حرام ها. ها اگر کسی مستر را مجبور شد که حلالی گیرنه آورد یکی از این چیزها دریافت کرد تو و و پس رفتر شد در گروفت بگید پس بخورد یعنی و خورد غیر متجانبی ایچنی تو خورد در حالی که مل به گناه نداشت باشد یا برای لذت و زائد از حاجت نکورد اندارتی حاجت اللہ تعالی امقاد مهرباند فین اللہ غفور و رحیم. حرام خستا لیکن در صورت استراب در صورت مجبوری در صورت درماندگی همین حرامارا هم خدا برشم اخلاک کرد لهذا إن آيارا اعتراض كردن اليوم يئسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دين إن آيارا غفتاً أغنذر ربط مناسبات بما كان وبما بعد خدش هич مناسبات شرا يسألونك ماذا اوهلا لهم باس حکم محرمات و محرملات ہی ہے در وسط این آئیت ایس مناسبتی بما قبل بما بات ندار ایلو میں یا ایسا الذین کفر من دین کم پراتا شروع لہذا آخرین تفصیل نمونه را من بشما فکرن زمان من تفسیر را مطالعه کردم که این آخر امتداد دو همه دنیا کبیت به توایت می‌جو اعلم و دانشه. اینجا که دیدم دیدم که نوشته کردند، این آیه قدیم که اعتراض می‌کردند در ترتیب قرآن دستور شده و دلیل دستور دین آراسته کنی کردند که این آیه ارتباطی به ماکب رو ما آباد نداره. خود این بشری خالی از وای کار کرده که بی, بی مناسب گنجاری بود. مناسبت مناسب ندارد. از محل ناص بیانه، از محللات ناص بیانه، از مسجد عالم دعایی اشاللادین کفر. و قدرت است این اعتراف بود که در ترتیب قرآن دستور شده و من جمله این به انوار منو مطرح ترکیم. حالان که آمدن آیات بل آیات را جمع کرده، بل آیتِ علی را گفتن بابا این آیات درباره بل آیتِ علی ہے متصل مجھے پا آئی کدر همین سورت یا ایوہمد یا ایوہر رسول بلگم و انزل ایلیکر این بدون بر اون تغییراتی که دادن از اونجا برداشتن آوردن در میان این آیه که برای محرمانه مطرح میکنند که یاد مورد ثلاج خراب نگیری. یه یعنی نماد متبادر به این آیه اینجا آمده آورد. از اونجا برداشتن اینجا آوردند. این آیه آیه علاج، علاج تعلیق الهام. آیه تکمیل دین. نانسته. آیه کنیز بخشی از آیه هست. ممی بیمی در گلوشم آس. یک آیه کاملی از هرمت علیکم المیتر تا بین اللہ غفور یک آیه. آیه شبومتوره مائده با است. و قسمتی از آیه هست. شرورانگرانی آنهاس انشی دارمیگن آزادن بگن لیکن خود ما باید بدانیم که این آیات را مقابل در ما با چه ربطی است. سرورانی گرامی ربطی این آیات مقابل و به ما با برای انسان بسیار و منی از هر منشمس. تو دین یاند؟ اسلام یاند؟ دین یعنی حلال خدا را حلال حرام خدا حرام دانستن. اسلام هم مانا خدا حلال کرده حلال بدنی، خدا حرام حرام دین اسلام هم مانا هستمینه، هم مذهب هم مانا ما رئیس نیستین که اتبارت خود حلال و حرام بکن مثل بوش و بلی اکیب آمد ایش خوش آمد نا ما زمان مومنی ما زمان مسلمانی و ما زمان احل الدینی جه حلال خدا را حلال بدانی و حرام خدا را حرام بدانی اللہ تعالی در این سوره که محرمات ابدی را بیان کرد چیز دایی خدا حرام کردن لیکن شو نذکر کرد چیز شما حرام کردن انها حرام نیسته و حلت لکن حلال حلالا نیستا. این بر اتخ اعتقاد مشرکی ما حد حرکت کردن و مشرک ما الان نصب را بالاست ننی خوردن الان شما این نصب معذوبها الان نصب را حرام دیدانی و مشرک انتست تقسیمو بالازلام را حلال تا شما این را نجیس و حرام بدالید. کافر از مغلوبیت دین ما نامید نمی و موقودا و مترادیا و نسیغا و ما اهلن غیراللهی بهیاکتا آخر شرط جان میکردن. همه این که گاره مشرکین حلالی. ولی خیلی دیره نیا ران بشرمنی نی خوره ولن بی خیلی دیره و خیلی دیره نمیخورن. فکر آره سما این عنوان محرمات الهی بدانی. کافر دیدن نومید میشه آبا این مغلوب نمیشن هر چیز را ما حلال میدانیم این ها حرام میدان این چیزها محرمات را ماظبه ها النصب را تکین بالاسلام را و مشکین حلال میدانستند و میخوردن شما همه اینها را فرمان من بدانید و حرام بدانید من دین شما را کامل کردن شما اینها را حرام بدانید کافر ها از مغلوبیت دین شما دلش شما به جای وسیلی که تکشیم بالادلام را حرام و نجس می دانی ما زوبه آلانو را حرام و نجس می دانی می ترا منی کرد من خانکامو تو ترا منی کرد لحاظ دین شما کنی کفار از مغلوبیت دین شما ناامیدانم امروز شما به جای که یسال لذین کفر من دین کو کفار از مغلوبیت دین شما نامید شدند ببینید در آفی هم فلا تخشو از کفار ندرسید حرام من را حرام دیدند امروز این ندرهای دیر الله که سر قطبات و زیارات کشت می شوند و می خونان. این ها راکیه میکونه بیده اینا حرام این اطره ایغیر الله این ها ایتی کلو از احطا حق بسنیشتا این ها حرام در ندیدهن وغیر اگر کسید اعلان ایلام بکنه بلا اونها نامید بسن کهیدیدهن این ها حرام دیشتا الله تعالی بی خاتر فرموت بلات مکشوه ودرسید اینا حرام امدره حرام دیشتا وحرام هم حرام من را، حرام بدانید، حرام اعلان کنید، وشانید، از من بتاثید، لحظا بیلی ناظر غیر الله را بخلید که بگشمال وحابی بیدن، نه، نا. این ناظر آ، این های که برای خدا بیاد غیر خدا میدن، همان نجیسن، بلیدن، در ما روحیل دیه یا اهر الله داخلان از شربتش گرفته از آشش گرفته از اون دوه هرچی برای خیر خدا بده این ها حراما نجیبا لها تزمن خدا بترکید حرام من رده تشمه بانه ها همکار و همفتر و هم حیال نباش وقت تاریه ها خدرت دنی پاک می گفتا یک دستی خدرت دنی پاک می گفتا جیاروی می چیه؟ جیاروی چیئے هر ما یازده ما هر ما شب روز یازده شیر گاو گا مشارا نادر برا شیخ عبدالقادر جیلانی می کنند این در آن زبان می گنند جیاروی این نادر شیخ عبدالقادر جیلانی که در هر یا در هر یاد به ما میدادن این هم در نظر غیرالله ماهی ندی جیرالله داخل نجس هر آماده نظر غیرالله که باعث غیرالله ای باعث غیرالله غیر حرامه حرام کردم کشمان شما فراتخش هم کشمان تو فر نداری در فکرشونی از من خدا بیش که چیزی را که من حرام کردم حرام می دانی بعدان است ناتویی حرام خای نکویی وقتی شما حرام های من خدا را حرام بدن، حلال های من خدا، تا بر اکثر آنچیزهای را که آنها حرام کرده شما حلال بدن، شایва بهیرا، آه، تا زیره سان، سان دمیدنی، دم بزنید و بخورید و آکنده بخورد، حرام های آنها را حلال بدن، حلال های آنها را حرام بدن. امروز دین شما را کامل کردم اليوم اکملتو شما کامل شما کامل الدین. و اتمام کردم بر شما نیوت دینی و دنیای را و پسندارا برای شما السلام را دید السلام یعنی حرام خدارا حرام دانستن و دانستن برات از و ادراز هم کردند که جای این آیه انجا نه این آیه برای آیه اکمالیین با امامت علی بوده این آیه را از اون آیه یا, یا, یا رسول بر لیق ما امزله ایله پیام تفتما بالا تر تعالات رسالته و الله یاسوک من النات اونجا بوده هایشت را همه دیمید دوده یا یه ها رسول برلگمه اون زیر این آیه باون آیه بس بوده اینه بنافر اون دستورده هایی که در جمعه قرآن عثمان ها کردن زهر ایبنه ثابت ها کردن این آیه را از آمده آن بی انجا در میان این محرمات آوردن زیاد مورد توجه قرار نگیری در تأثیر نمونه همان این چید را نمشید بری نگاه کنی تأثیر نمونه این آیه مال دین با امامت حضرت علی بوده. من این اعتقاد پوچ آنها که قرآن دگر تحریف میشه آیات را تحریم آیا و تاخیر کردن جاب جا کردن یک نوع تحریف لیکن خوب که این آیه ما قبل و از دید ما که آیه هیچ جا بجایی نداشتے جایی این آیه با همین آیه دو از رسول اللہ ثابت شده بود این آیه ارمی ایام لکم تلکم دینکم هم روزه عرفه روزه جمعه در میدان عربات نازل شد یهودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لگو اگر این آیه بر ما نازل ماجش زندگی اگر ما بم ما وقت نزول این آیه را و زمان نزول این آیه را و مکان نزول این آیه را داری و گفتم چرا دیگه برای ما جامش میده؟ آر بامات، جم امامات، دل حجامات، تو نهایت بخاطر بدعت این از برای جابجایی آیه ها نداری. و اون هم این اعتقاد را نداریم که این آیا یا اون ما امامت حضرت علی تعلق داشتن هیچ اهدي از صدر اخلاص یا یومنا غیرش روابط این اعتقادی ندارد و یا این یا سیاد اینه ها سباق اینه ها تقنیم اون آیات سیاد کلامی کی ما انسان کلامی مورد اعتراض قرار کلامی که ادعا و بلاغت و داره کلامی ربط و چطور پس مناسبت رفتی این آیت ما قبل ما باتشی اولا مانی خایم پیدا که دین چی اللہ الیوم کفرو من دینی کن با دی پرموده الیوم اکمارتو دین این چه معنی جدای لقمان دینو کم‌велиه دی دین همان توری که جدای میگر دین مذابوع آیین رمیگر تریکر آمیگر دین اسلام یا آیین اسلام را دید ولکم ال اسلامه اسلام را برای شما دین من تاثیر کرده است برای آنگرایی دین یعنی چه؟ یعن آیین مذاه دین چی حلال خدا را حلال بدنیم حرام خدا را هرام بدنیم دینه فلانی دینداره یعنی چه حلال و حرام را رعایت نیکنه و فلانی دینی نداره یعنی حلال و حرام را رعایت نیکنه بی دینه بی دینه این دینیانے حلال اور حرام میں لا ایدار ایت کرتا ہے اللہ تعالی فرمود امروز ماذوب علن نو صبر کہ شما حرام میدانی سخین بالعظلم را شما حرام میدانی علنا می می اعلان میکنید اما سخین بالعظلم میکرد ماذوب علن نو صبر تا خیر میدردن ولا تا نہیں گردن مولانا نے کہا مو خدا و مترادیو می می نتیو میتا جنگی دیگار کفار می وقتی وقت سمان چیز دائره که کفار می و حلال می شما حرام بدانی کافر حد که بابر بکنن یه دیگه دین ما غالب نیشی دین محمد غالب شد تو به حراته هر روزی چند تا باب گشن بسطور کشته می اینها دیگر نجد مده و حرام دارسته بشکن بردان مردم نفرت کنند. همان تو ایک مردم نفرت کنند. شما که امروز در های غیر الله را حرام می دانیم اتا را اشتناب می از مغلومیت شما نامیده او امروز که شما حرام های من خدا را حرام می دانیم معصوب حالم خوب را خدا حرام, حرام کرده را خدا حرام کرده که این خنزیر خانان مشیحیت کو میخورن خزاون را از دی دینی شما نوید شد خوب این یهودی ها نرم خوب شما هرم حرام میدانی بارمانا اشترام میکنید اونگا دلن اومید شده تا از مغلوبیتی دین شما تو جای آیا خمیلی حرام حرام دادانی بینی شماد حرام حرام خدا آن نظر غیر الله و غیر الله حرام نمی خوردن آنها را عبادت آش هر می خوراندو لذت میدرن شربت ر می خوراندو آف میکشن اهف شربت باقعتی آش خوبی پخت کردی شما اغیر آنهارا حرام بدانی دینی شم کا باض د سر مقصد بردش قرآن خیمشا تو هیچ ارتباطی با امامت هضرت علی انایات ندر نا خیاخین آیا آیا این جو رسول به امامت علی امامت یا ولایت یک مولای ما ولایت ولایت جی در در فی بیل آیت ایلیم اللہ. اللہ تعالیٰ نے بھی چنکتی گے کی فی بیل آیت ایلیم اللہ. اللہ تعالیٰ نام نوح ربی گرم رسول کردن اصل نانوح ربیل آفو بی اندہو می روادن المختص بلن اللہ تعالیٰ کردن بھی گو بلک ماور ما دلائی ریتا فی بیل آیت کسی هم اشکرم نمیتونی سمیتی دیدیدید اب ایامت هم خود ای حضرت اگر از دین آیا امام دایی شده بود و از دین آیا امام داییی امام ای امام شده اتبانه قرآن شده ویدی که برای تایینی خلیفه جانشین رسول اللہ تحابه باندوی با مشکلن اشخاصن حضرت اهلی مرترح نکر اگر مطرح کرده تو هتو برحانه ک سالمان که را مطرح نکرد نزد که را مطرح نکرد ابوزد که را مطرح نکرد که شما به ایمان انها هم اعتقاد دارید چرا سالمان چرا حابوزد یک روزی هم نگو که امام علی با برنافید خدا حائین شده. اگه دفتر سحاط و برحان اکم دلیق ربی علیمت سنت بان سنت دیاری ثابت دی اما اگر شما بیاری که بودھار بودھار بودھار دبون نمکنه سمک شدید از مطالما در این موسیقی کچھ آیم و حضرت ایلی هم از ایدائیمان نداشتاک تا خدا بودھارت این کنو بله هر مومن ولی و خدا حضرت علی و اللہ ولي خدا خدا هر دوست خدا ما در باره نایب رسول پیشه الله ولی المؤمنین است الله ولی يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولی المؤمنين الله ولي المؤمنين هر مؤمن ولي خدا و الله ولي او یسالون کماداوهیلا لهم لَهُمْ کرده براینا الله حرمت آمده او او حالا شما تشخیص همه چیزی که کتاب الله در سنت رسول الله آمده کلی بیان کرده که برای شما حلال شده جایدی که و یحرم و آنکرون خباید شیگار و, و, و, و آیا یا تایا خود شرط تیبات است چه تیبات است برای سلامتی بشر صوبی داران برای قوت بشر صوبی یا تمام بدن را پاکد می کنند شکار می تمام بدن پاکده ذهن کی با خودار نیست ایس فیغار، نتوار انها بیعت اتقادمان تحیبات میستی انها خبائش و چه سوگان هیچ طبیعت سالیمی انها را نمی دواردو که اگر طبیعت ہے طبیعت قطاریه شرقیه طریونیه سلطه تو اشای دی نبی کے طیبات لیکن عورت کے طیبات قبول نہیں زمان موتاد مرغوب یا غیر مرغوب جواب زمان موتاد مردود جامعه هم هست هیچ طبیعت سالمی خوشش از موتاد نمی آید می آید از موتاد تیرا خوش می آیا چرا الخبیثات و الخبیثین هست والخبیثون للخبیثات هست شغلان گرامی خب کانون خدا بیان کرده در زمان نزول قرآن شرط و بک و سیدار و دخانیات در میان انسان ها در هیچ نقطه دنیا معمول نیست در هیچ نقطه دنیا معمول قرآن قانون کانون الهیات قل اهل لکم التیبات حد شد برای شما خبائش ما حراما باب بلشوا حراما عشرات مذاقنی کے خباثنی شکرات حرام ہے شرک حرام ہے حدیث میں تشکر دے حس حسرات حرام ہے ما علمتم یہاں ما مذاق میں حدیث میں ہے شکار آن چی بی؟ که شما اورا تعلیم داده من منر جواره یا نه اتکاوتی؟ شکار اون پرندگان سر یوی. بگید چی را این درنداش ما تعلیم دادی که شکار کنی؟ این برای شما حلاله. سعی دمای آلمتون من جواره به معنای منر کبابی. فرنده صد یا غیره یوز که شما طالیم دادی شکار اون معلم هم برای شما حلاله شرط اول که شما اورا طالیم داده دا باشی شق غیر معلم طالیم داده دا نیست شق غیر معلم اگر خرگوش رو شکار را بگیره و قبلا به پوشه حرام اگر, اگر شما رسی دید و از دستی خلاف کردید و بسم اللہ اکبر کردید و سرش را بوری دی خوب درست دی بل اگر شکاری میخ خربوش یا شکار را بگیره ولی حضا شما رابطیتا مورده او را پارا کردید کتکیش کردید حلال میخ لیکن شکاری اگر او را پارا بکرد و شما رابطیتا نفس سیت سو دید با این شرائط حلال میسید حرام میمیسید و سیدان شما تعلیم دادید در جواره در حالی که شرط دوم و شما مسلط کنید این معلم را این سغ و این پرند را تشریح شرط اولت شما تعلیم داده باشید اون شکاری را اون شد یا مرگ را از آن ترائی که خودا با شما تعلیم دادی که چطور تعلیم داد اپریانگر جتور تعلیم داد شگه چطور تعلیم داد فخبی خوری شما از آن کی بنا شما بند کردی شگ شکاری شکارن نمی کوری دلیل تعلیم اس هم همینه کی شکارن نکوری شکارن گره نمی کوری ما شکار کردیم با سگر مولا شکار می گیره کربوشن می گی ومیزن زمین، و انسان کا دن خیلی دور میره از انسان سے تا اونجا انسان میره تا مرده و نه مرده فقط گریفتے می زمین و میزن بزمین و دلوشمی خوابه یا می خوابه یا می اشتے حتی ویشم انحرار چار شرط دارت سالین دادباشی مسلط کنی و شرطی که اون امشاق قرد نک وعد قرس اللہ علیہ چار مشر شما نام خدا را بر آن بگی اون شکاری کی ان شرائط در آن باشد داده دا شده باشد اون هم نام خدا را و اون قرآن که صد باشد یا باد و شاہین حراب و مرگ دارش کانی قرنده داره دلیل تشریحش در پیت هم نوشته در حدیث هم نوشته که شاید قرنده تعلیم شکینه که وقتی او را بخانی که او برگرده بیانی نره دنبالش کنی سکی این طریقه تعلیم نمی پشیده چرا وقتی که سد سید را میبیند یا خردوش را میبیند این سد دیگه نشه است به دنباله بود او به خدای کسی توجه نمید تا جایی تو اون نفذ دارد و اون سید را میبیند دنبالش بود و این تماشای هم دارد از دور در مرحله اول سطح قبط دارد و با سرعت میلید آخر کاردو تا چنان خسته میشه که سبحان هم سردوش خسته هم آهو خسته و هم سک کداره دنبالش میکنه خسته خسته, خسته. امروز شدانه دوتائر هم خسته نمیشه کسی اران خود موجیه موتوسیکلیت هستن مسو چار تمام زمین گودی و نا جلوی جو ان مار زمین صاف ات خدا بطلخی. شراایت خدرا رعایت کن خدا را از کجا بگیریم این تقدیر داشته باشیم که الله تریوی استفاده با خاطر ارزای نفس شراایت خدرا رعایت نکنی بخوری خداش اسم حساب می کنی. الیوم اوهلل لكم الطیب طیبات برای شما. حلال داده شده هم یا در خواهی چی طورن ها نخوار و خیدار و چرس و بین اینها جز خواهیست هست خطوصا تریاق و ترینیون و اینها خیلی خبیش اینها که دیگه انسان را پاکیت اینها در خواهیست داخلن و کسی در آن ندار وعنائی که سیگار و نسوار و این کارها را نمی کنن. هم تقریبا طبیعتشون همین تغازه میکند که حرمت اینها هم جز خواهیس بشه چون منسوس من الله نیستن وزرنشون اونقدر سنگین نیست جد اینکه خود سیگاری را بزرگم اترو بین نشان وانمی کنیم بگیم قدعا حرامه حتی صار ہش کہ لبهای کہے اللہ ہائے نشنگ خو درا دندان خودرا با دود سیگار و با نسواری سن را ما عمل تو تحمل کنه این لب نازک و سیبارش را خراب دی خود چه لب زیبای انسان داده و چه دندان خوبی داده اینه میذنین با سیگار کشی کنه چه شو بعد شکرش میکنید شنان دوی افادی اثرون اینا میا سبحان الله چه بندگان خدای موحد میشن افلاش دیدی خدا نجات جوان ها خوشی نکنه مثبت بر علای شیجار بر علای نقشار دیوار و نقشار در طریاق در کیان اریاب اریاب برگردے فلک فلک سنبالانے اللہ تعالی ہمیں خواسمے ہمارے حفاظت کرے وہ ہم جن نے حلال کا قرار داده شب برائے شما کتاب تا مان تصانی ایجاد شدہ کتاب ہلل لکم حلالن برائے شما لیکن مراد نان و بریز لیے قرار با اجماع مفسرین مراد مجبوه اهل کتاب یهود و نصاره که مرتكب بخلابهای آتمانی و برسالت انبیاء باشن و با نام خدا جا بهمی کنان شبیه اعنا برش و حلال مجبوه یهود و نصاره خلاب والثعام شما هم برا أن حلاله يعني مزبوه شما هم برا أن حلاله وهم كنير والمستنات من المؤمنات زنان أتيثوا فاق دامونت المؤمنات باس أزمؤمنات باسن برا شما حلال والمستنات من الذين رأته الكتاب من قبلكم وأن زنان كفاق يشأن أحسن أتقان كدادشان كتاب قبل شما زنان یهود و نصارا برای شما حلالند به شرطی که ضمه و تثبت کتاب و به پیامبر باشن و معتقد به حلال و حرام باشن مثل پوش بلر سارون که زنا حلال بدانند نه یهود و نصارا که معتقد دیدن باسر زنا حرام لیکن یهود و نصاری کمونیست که زنا را یک غریزه ایک جنسی میدانند و حرام میدانند نه نه حرام هم انا ایک قائل به حمرت زنا هن و اعتقاد داران انها حرام حلال وقت شما دا جید و انها مهر آنها را در حال اکشتما همیشہ خود را پاردامون خود لکنی غیر آفاشی کنین دواشی آپ قطنر جی حدف زنا نیست و غیر مستقری اخدام ان غیر مصافحین صورت زنا در ظاہر و در حالی که شما غیر گیرنده اختان بازی خررن زنای خیروی در حال اینها برای شما حلال صاحب زوغره میره بلشته کرده شرط این که قائل تخلیف نماز ایک مولانا و صاحب فتر القدیب نرشتن که مطلق مذبوح احل کتاب جایز است خواه تخلیفی باشد یا غیر حال بس نصارایی که دهري باشند آنها جائز نیست و آنها هم است. خب ما حلال کر محسنات من المؤمنات محسنات من الذين الكتاب نیست جائز نیست. گرفتن جای دادن زن مؤمنه به یهود و نصاره نادره چرا مرد میتونه خود را نگه داره و تابه زن نشه ذکر زند یه چرا زن مغلوبه در برابر مرد در برابر شوهر و آخر شوهر برو غلبه میکنه تتمیش میکنه تحبیتش میکنه ترانس زن دیشارت دین خود را دست میده لیکن مرد نه مرد دیشرتی که مرد دیواشه نه دی مردان آمریکایی، یه مردی مرد دیواشه مرد دی تابیز دن نمیشه زنگ هیچ عنوان نمیتاوالا بی ایک مرد واقعی که مرده او را تحبید کنه برکشی تحبیدیش میده دی. ذکرتم و حرآن مرد غویه زنگ دعیده زن هر که باشد دعیده زنگ زنه دیگه اگر مرد و غیر مردی کبیر بس زن گرفتن یهودی و نسرانی مباه زن دادن به آنها که مؤمنه را جان قلسان دید این سران و من یکبر بالایمان جواب سال مقدیه بخان این که وقت مجدوعه و نکاح جایزش پس معلوم بیشه که دین یهود و نصار هم محبوبه اللہ تعالیٰ میگل نا من ایمان. بالایمان هرکسی که انکار ایمان کنن خطا ربط عمله تمام آمال خیر او برباده و او در آخرت از خاصلین بیان امر مصلح امر مصلح که شما بر این محکمات الهی و این حدود الهی را خدا شما میکوانی زمان احیاء کنیم شیدھا ظبان کے بارے نماز پڑھی یا اے اللذین آمنو اذا خفتم الا صلاۃ اے مومنین وقتش شما ارادہ کردید و وقتیاں کردید برای نماز مش شما بھی صبح بھی شب شویت شما چه راہ کن را تمہارا جسمانی صلاۃ تمہارا روحانیش خوف کن وجود کن طہارت جسمانی ویدی اکون دستهار خدرتان مرافی و مستنید دشتر اثنان و بشری فقایتون را الان خوابه تشبیح این آیه را در کتاب و طهارت سید شما خانده وین کنتم جنوب انفتح اگر شما جنوب بودید ای توآ ای اگر طهارت کغرا بود این طهارت کغرا حاش فردیت بود اگر شما جنوب بودید و خوب پاک بودید یعنی تمام بدن خدرتان بشید و اگر شما مریض بودید بطارت چشمی سبحان اللہ او الاسکر یا مسافر بودی یا یکی از شما از غایت و از قضا نازت آمد او لامستم النشاء یا شما لمس کردی زنان را لمس کردی زنان را یعنی جامعه تو بانان هرکی شدیل از امام غنیفہ مرد از لامستم چون باب مفاہلہت این جنائی از جامعاتون هستید فلم تجدو شما در این صورت آب ندید مریفی و قدرت بر آب نداری. آب بر شما ضرار جهد فلم تجدو مان را مانا این کنید فلم تک دو علا افتیمال ال آب بخاطر جلال یا بخاطر امکانات آب نداری. مسافرید تو پا تیمم موسیعی شما کنید کشت خاک پاک کنید دو درده مست به بی و بی شوی گوی یک دربه برای شهره احتمال کنید دربه کنی دیگر برای دسته ها کنید دست کنی جنوبی و, و تیمم کسی جنوب هم وقت کی وہ زونہ دار ہیں بہن جی جو ماں مسافر جنوب سے دی ہے۔ حضرت تیمم کے بنا نماز پڑھتے ہیں۔ تے ما یرید اللہ وکم الیوس ما یرید اللہ خدا ارادہ نکرده کر دے حکمت مشریے تیمم اللہ تعالی ارادہ نہ کر دے کہ فشار ہی لیا کرے کمن حرب بر شما تنگی اگر شما می گفت نماز را خانید وقتی رفیدید به آب و وزو بگیرید تو چار نماز خاندن گران نماز را خانید در طاعت دا عبادت شما کمی می آمد پس اللہ تعالیٰ نخواستی و شما را دا در طاعت ناقرار دورید وقتی آب بی اتفر نیست موغیر و تو آمدید با مستید تعمل کرو نمازی نماز را کتاند این هم خودش دلیری در دل این حد که جمع در نماز نیست و اونا آقا یک موقع نماز دست را آب می‌آва، در موقع دیگر به آب نیسته. اسلام نبوده شما این نماز را دوباره با اون نماز باتیم. این هم یک دلیل بخیار قانه کنید، ده که چهام در نماز نه نیست، این آقا ها چهام می‌کرد. چرا از قبل دستور دهم میده؟ چونو بیرد دستور دهم میده. بے وقوف راترا کا یہ میده۔ بخاطری که کہ اللہ تعالی ارادہ نہ کر دے شما حراجی گزارے۔ اگر فاجنم نماز شما آب نمی بھی آپ کی فاجنم نماز را ایک مرتبہ خاندان گیراں ہے ان ان خدا نفس۔ کہ جب کھنی در آخر کہ به امر ایدی القسط کنید و ذوب گریز نماز مخانی۔ ان چیزہ نہ کو۔ وغريم ما قاموا او ابيها في صلاه تمام موصيدا اذا قبل نमाज المغرب مثلا مشوني في خانه ما صار قضاءنا قلنا امه كنا نصل ما مريضي و ضرر ضرر دار تمام بس فايش ما صح ما بيشي وبسته شکسته ها دید خب وزو بگیریم خراب میشه تیمون مریضی که نمی توانید وزو بگیریم خب تیمون نماز بخانید نگو که خب جن کنی نماز هر وقت حالش شبید بخوانی که اگر ده روز مریضی پنجه نماز را کمی توانید بخانید یک سر پنجه نماز خاندن آسانید سرولانید اسلام نماز ولكن يريد أن يتذكركم بعد أن الله تعالى يرادكم في شمار فاق كُلو وخامل كُل إبن المسرى دار شمار إذا كنت أب نداريب نمازنا خاني مثل الزن مريض نمازنا نسان نماز نماز. في خاطر رغمبر عليه الصلاة فرمود فرمودنا قطاط الأقل والدين دين هم ناقص أقل هم ناقص اعتراض کرده خانوها يا رسول الله تور دين ما ناقصه أغل ما ناقصه بلکیه که اسمتی شما نماز و روز را نمی گیری در زندگی کلاوات مداری مریض حالما مبارک رمضان وخلوق روز را مریض بیشارا روز را نمی تونی بگیره نماز را نمی تونی بسان روز را بعد قدامی کنه لیکن نماز نماز اللہ تعالی بعد سورتی موقعات نعمت را در شما قامل کنه در نماز کمیل راست باشه نماز بارنه خدا می کنید بگه مسلی زن که شما وقتی آب داری نکردید نماز بارنه کنید مریزی نماز اللہ خدا بعد نعمت شما گزار باشید دین خدا برای شما تانید. هر مریضی داری تعمل نماز نمی توانی نشرفتا نمی توانی بگشاره با اشاره نمی توانی نمی توانی نمت خانون همه برای تو از بلی ذرانی که مریض می شون سکر بکت تا کافر ها از نظر سخت برمانان، چه سخت نمی تونه بگیره نماز هم نمی تونه قرآن هم نمی تلاوت لکه سخت نمی تونه بکنه، با هم هم نوشته باید در موقع بتو بگیرند و سر جام بیشینه تاکه عادت نماز از کردن اینها دور نشه. داروز نماز که بی نمازی عادت پاتنما سنورشن اللہ خاص را بر شما کامل کن گفت به شروع نماز قضا لازم مریض جلوی نماز چه يريد ان تم ويتم نعمته عليكم خاص شود در امتصال این نعمت ها شما شده شپرد گزاری کنید بعد از امر محسنه باست ایادت وَذْكُلُو نعمت الله از نعمت آئلہی بکثرت یاد کنید چیئے نعمت اللّٰهی الاسلام تقصیر روح المعامی اون نعمت سورا یاد کنید اسلام ہے برحبت نسیلات و آسانید اللہ تعالی برای شما تناظر کرده این نعمت ایلہی را یاد دنید و اهدهائی را که خدا با شما اهد گرفتے و میتاقه و اهدهائی الهی را اون اهدهائی که واسک کن به گرفتے از شما خدا اون اهدهارا یاد دنیدی فاطلید هنگامی شما ایمان آوردید بی قلتم گفتی سمینا و اطوانا قولہ دی و خدا را اطاعت در ما الله را اطاعت و حلال حرام مباح خدا پنا الله علیم و دادت سبحان الله نسخه اخلاص باطن نسخه نسخه اخلاص تقوى و نسخه تقوى الله علیم و دادت سبحان شما کجا حکم خدا را حکم می دانید و کجا نمی دانید الله خلق از اشرار دل خاکشون خبر دارد ای عادی مذمون اولیاء و اللهین آمین کون قوامین لالار امومنی باشید کیام کنینده برای خدا شما کیام کنینده برای خدا باشید حرامی مبالده خود کیام کنینده برای خدا یعنی پای بند احکام خدا باشید شهداء بالقیس و شهادت به بادل باشید بادل شهادت دهید غیر عادلانه شهادت نمی نسبت به خدا شهادت حق میدی نسبت به وندگان خدا شهادت حق میدی و نه یا در من نکم شناختون یادی مدامین قبل از طول هستن کیامش ما برای خدا باش جن میکنید برای خدا سال میکنید برای خدا فایبن برای خدا باش در طول ایلایری جلبتون شهادت برای خدا بدید عدالت و عدالت ببینی لا یجرمن نکن شدان قومی برنگیتن نکنت شما را بغض و عدالت قومی بر این مطلب که شما عدالت نکنید بر عدم عدالت شما را بغض کن وادار عدال بلکه بلکی در تمام معاملات و معاشرات عدالت تویی که او اقرب به تقوى، این عدالت شما خیلی نزدیک به تقوایت است. و تکلّا کدم به کدم از خدا است. کدم به کدم از خدا. چون بدون خوب خدا انسان تیکیده. نصف تقواین الله خبیرم بما ما عملو. الله مراقب شدیده. اگر ما لش اوریدیم خبر داریم. جنایت کردید مواخذه میشه اطاعت کردید جزای خیلی شکنه وعده خدا برای ناکی مان دارد دمست خدای تاکی خدا وعمال صالح انجامی دن فوق خدا برای آنها مغفرت است وحجر افیمت وعده مغفرت برای مومنو عمال سال خدا نخترت میکنه گناهشان. اگه نظرت از رأی میل زلب نمیکنی. الله دین کبرو کرد وو به آیاتنا و نعایک کبر میکنن. یعنی عیات الهی، دستورات الهی، اطاعت میکنن. خودتان تقدیم میکنن آیات کامین ما کروں گا تمہارا سماع ایادت کر کے الان گپیا وعد کروں نعمت اللہ اللہ اللہ تعالی بہت همین منظور ایادت نہیں کرات یا یہ نبی نے امن کروں نے نہ تھا اور مومن شمال میں میں ہائے وا تیرے الائی کی شما بوده یاد چقدر حلال چقدر حرام اون حلال های الائی نہ حلال بدانید چقدر حالات خدا بھی شما داد آسان نہ خود یاد کر یاد کنید نعمت غایی که شده از همه قوم که اراده کردید قوم که دراز کنند به طرف شما درستهای خود را فقط فا ایدیه ام انکون اللہ را آره شما بند ها. در مقال حدیبیه 80 نفر در سیر فتخان دید. نیت شبه خون بر پیغمبر الاشتا سران درست و, درس و برستهابه پامان اینکی نه هر بار صحبت آخوتات کنن سه اینارم مشارکت کردن خبر داشت گیت کردن در جنگلی کودکیه کودکیه جنگلی. الله تعالی اینجا کوچی می ناآت مسلمان شدن بیگو خان آشماره براییست نمیکنن بلکه اینکی شما ادالت نکنید و بیحدرامی نکنید آب البیت الحرام آن سختی کومن المسجد الحرام کیلا آشماره مسجد حرام. مان ده این بب برای این بادار شما تجاوز کنید عدالت نکنید یاد کنید آنجا کنید آنجا کنید شما را نگو داشتا فاتح که نابود لیکن من جلو بر شما اگر به بهاره الهی وصله. اهل مکه بازنم مردن حضور میکردند. برای نهزار فانسات. یکنار الله تعالی. یعنی من با خود خودم دست آنها را کوتاه کردم. به آنها جرات و همت ندادم. آنهايی که آمده بودند در هدیبیا و آنهايی که در مکه بودند من دست آنها را شما بند کردم. به شما حتی یک کوچکتری زردی هم وارد نشود. هم این اکسان میره لحاظ آران کنها ایمان آوردن و من قبور دارم و پیغمبر من قبور دارن و قبور دارن قرآن من قبور دارن. و آمدن که حج کنن یبتغون و فضلا من الله و رضوانا شما بلیو تعدیم حکونی خالان که شما در اوج قدرتی دیگه طرحون کنی دی. یاد شما نیت اون زمان که شما را چوگی میزدن یاد شما نیت که چو بیای خوردی ما الان کشما قدرت داری چویی نداری، چویی میداری، پس گردنی؟ پس دیگه نداری، شما پس کردنی دیگه یاد شما الان که به خودت رسیدی، شما هم سلول دی دی؟ شما هم لگت خوردی. آرزو میکنیم خواهیم این کی aminu, adhkoru, در میکنیم؟ یا اولین آمده و ذکر نعمت الله علیکم هم قوم در سرزمین مکه که دراز بودن به طرف شما دستهای خود را برای اداره فرمانی و قتل شما، لیکن الله تعالی کرد به ایدیا هم انتقام الله دستگاه را شما کوتاه کرد. آرزو شما به وجه قدرتی دیگر دست را زده. هنر خدا را که دست آن حالا شما کتره کرده اطاعت کنید ولی آمین البته الحرام را مورد ایزا کرد نکنید شنان قومی که شما را معنی بودن شما را وادار نکنید در عدم عدالت عدالت نکنید برکه ای دلوح و اقرب و لستقوه هر امی شما در آج قدرتید عدالت کنید بیروز که شما قدرت دیگر دیگرم بر شما ظلم کردن و من خدا تا این عرصه شما کرده. خدا کردم حالا نزد من خدا ها اللہ. از خدا بترفی خدمت کردم و آلان الله اگر احساس درد از آنها داری باید به دار خدا اعتماد کن مؤمنی هر خدا را بپذیر وَلَكَدَ خَلَ اللَّهُ مِتَاكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَاتْنَا مِنْهُمُ اثنى وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ رسل. الله تعالیٰ نيجر من عدد فئمان از بلی إسرائيل كريستان وَبَرَا يَعِجْرَائِ اِن فَإِمَانَهَا وَبَرَا يَعِجْرَائِ قَوَانِينَ مَن دواسد کرده که این سردارها ها، این نقبا مراقبت کنند که مردم از فرمان خدا تخطی نکنند وزیبه سرداره ها سنگینه سردارتان ها مراقبه این نبرشد که کلان شد کنه دو دی می کنه و دو دی به من می کند فنچو که به من می سردار وزیبه اینه که اونهایی که دیر دست او حسن اونها را به اطاعت خدا و فرمان خدا بادار کنند از اونها خدا جلو گیری کنند شرداد و خاطر نیست که پکت باز بگیره و دخوره شرداد باید مراقب باشه الله تعالی میگه من از بین اسرائیل اردو پیمان گرفتم. و برای اجرائی نعبو قیمانها من دواز ته سردار هم تایم کردم وہ انوان مراغر داغبت کنی کسی خدا لنا فرمانی نکنی اهدهائی الهی را اجراء کنن و لکت اخذ اللہ میتاک بین اسرائیل برای اجرائی این اهدهائی بین اسرائیل اللہ نگه باحتنا منهم اتنی اشرا نکیبا من دواز ته نقبا یعنی دوازده سردار تاین کردن که هر کبیلی باید سردار اطاعت کند و سردار مراقب آسد اونها نفرمانی نکند احجکنی نکند و الله تعالیٰ گفت نیمع کن مرد و من با شما هستم میت خاص من با شما هستم که این فراید شما هم جانبه لئن قمتم الصلاه وان اداءت اسرائیل اسرائيل لخشعين اگر شما قائم نماز خنیدہ بنی اسرائیل و برداخت ضاخت کنید کنی اون شمائا شمائا رہا رہا و صفاء شخصی شما این وظیفه اخلاقی شما سرمایه دار حافظی دارا ذکو کرامت مساکین بدن و امنتم برسولی همان بانان من را تقی کنی این اسرائیل اکیده و اثر تومهم و اون انبیای نصرت کنید در برابر دشمنان. با من را ایمان به با انبیان من بیارید. به دستورات انبیای من ایمان داشته باشید. این فریاد قابیش ما. و عملن اثر تومهم، این اثر تومهم، را نصرت کنید در برابر در دشمنان. و کار دادید شما به خدا کار داشتن، علاوه بر زکات اگر در مسیر نصیب انبیا ما خرید کنید، انبیا چه آدمی کنند شما ما و جان کرد، کنید، و این خرید شما کار داشتن است. اگر شما اقامه نماز کردیدی، تاکت کردیدی، ایمان به روشی ای آوردی، ولی از اذا اذار تومو هم نصیب کردی انبیا ایمان را. و قرض دادی شما خدا را کرد حسان ثمره اول او کافرنا عن كل سيئاتكم شما می گناه ها شما می بخشید و ثمره دوم شما در جنت داخل می شونن که جاریت غیرا نه ها و حتی سقوط کرد بعد فیمانها شما سوا از این عهد و پیمان ها که شما توقدر دللا سوا اصلی هو اذرا مستقیم کوم رحمت فهمیدید الله تعالی میگه عهد و پیمان من است اسرائیل ان گرتان رعایت که ان اسرائیل تین عہد پیمان نہار شمار ایت کیں لیکن انان نہ عہد کر دتا بجائے کہ نماز خانہ بھی نماز ہی کر دتا نماز نہ زکات نہ ددان انبیاء را ضعیف نہ کر مال در راه خدا جان در راه خدا خرج نہ کر داں من انھا را لعنت کسے نماز نہ خاند لعنت کس کر ای خصوصیت بنی اسرائیل نیست. در این همه ترک نماد نخند معلومه. در احادیث شما خاندی. دکات نداشت باشد. اگر ایتکاد نماد نداشت باشد، ایتکاد الزکات نداشت باشد، اعتقاد نشله به انبیایان نداشت باشد. کافر. مردوق کوک کرد که الزکات شاید هر که مولع یا مولبیه. اتفاقی فردی تهذکات که در راستا با صدر پروشا پر کشید. الله تعالی میگه سب ایمان عقبهن نتائین نث نت اول لانا دوم کثاوت قلبی سوم سحر ی چهارم سحر ی آیات الهی پنجم خیان ان همه در نه، فرمان اخذ بهم می فاقه هم بیشا این اردههای فنشگانه، به طور ویژه و برای اجرای این آن نه هم من فاین کردم که به عنوان نائب حکم خدا را اجرا کنم بین مذهبها نگذارم بین مذهب، بلکه این روزین حاکم هرها خدا حاکمیت داده که مردم را بین مذهب، روزه، سکه خات ادای نصرت الہی وسیته ان کے مخبری تنبیہ کی تو م خدا سخت شوا ہے شما از رایی سهار میشن شوهر رایی امیر رایی امام رایی ایچی نگید که مختلی ها نعرات میشن و اوش رو ستریه سخت محصولیت دار ما خود را میگم کشنمازم شما نه اشما کشنمازم حکم خود را برد بیان زکات خب خدا بیان سبب نماز زکاة ندادن. تایید و نصرت در آئی خدا نکردن. اول اول الله من حضرت مطاقه خدا بزور کرد چیان هستن این که خدا لعنت شمید کنه و این بنی اسرائیل، بنی اتراییل یعنی سید پرزند یعقوب پرزندان یاقوب نها آقا داده رستن نه داده داده لیکن وقت نقضی آهد آقا داده بکنن هم میگه اللهم لعنتش کرد سواجه هستی اگر اوزادو پیغمبر زاده و پیر زاده نقد اخذ کنا نماز نخانر الله میگه من لعنت کردم این باب فرمانا نقتهم مصفهم لانه پیغمبر الله نے کہا کہ نماز نہ پڑھن پیر زادگان اخوند زادگان مولوی زادگان الله میگه میں ان ہر لعنت ونتيجه لانت جعلنا خاطئة دل ها انها لمن سخت سخت لا نجعل قلوبهم قاتية للغاية إنهم سحق كذا سحق تريش كذا لانص سمرش سحق تريش سحق تري سمرش يحرقون الكلمة المواضي كلمات إلى إلى تحريك كذا وإلا نتى هالكلمات إلى إلى تحريك كذا يحرقون الكلمة سمرى قاتية نتیجه بر این دلیل ها سقط و و تعالی قلوبهم قاطیه ثمره شخصی تحریف کلام الهی شد کلمات الهی را تحریف کرد رد و بدل کرد آنچکه به سود خود ها بودند خواند آنچکه به ضرر خود نخر کلام الهی را تحریف کرد لفظا یا معنا خود تحریف کلام استبرد شدین ها از احکامات الهی فراموش کردن نسو حفظا مما ذکرو به فراموش کردن بخشه دی مرادون آمال و اقایدی که تذکرداد شده بودن باون آمال و باون اقاید بخشی و فراموش کردن نسو حفظا مما غبتی رو بهی برای مشکردم بخش عظیمی را حضور آمال و اقایدی که در طول تاریخ در طورات انجیل و زبور بی ها تذکر دارش کنید از نما خبر نیر اشک یا و فیر رمی از نما خبر نیر اشک مولای یا علی رمی زنگ از نما روزا ترد زکار حلال و حرام ایش خبری میره تشخیص خوش آزام ربی سلیم فنسو حظم مما دکروده و این احطیان از اعمال و اطایدم لازمه فا ایلا و اینو دیم و رضاهاد دانینا از از اردون نمی جانا نسو حظم مما دکروده خوب ایش نتیجه دار نسیان از فرمایشات الهی فراموشی بیخبری از اقاید و آمالی که خدا تذکر داده که این شما با این باستر به این را انجام بدید این را حرام بدانید حلال بدانید حرام و حرام را کامل فراموش کردن هرچی بدهن آمد گفتن هرچی بشه کم آمد خوردن فرچی بگیر آمد اوشیدن فکر نکردن که حلال و حرام این نظر غیر الله و این نزیس حلید این حبر غیر خدا نادش خدا هیچی ندارست نسو حضا مما ذکرو نتیجه نکیمه ها خایلان درجه یک شد در حربان خیانت نکنن لا تضالتتلو الى خایلت منهم نتیانت حلال و حرام این فرخایل همین شما میمانید مطلع میشوید بر خیانتی که از اینها برمی‌گرشه الا قلیلا منهم مگر خیلی جمع از آنات مسلمان بشه این پنج ثمر لعنت سمرش قاتیه قلوب شود خفاوت قلبی سمرش تحریف آیات الهی شود و تحریف آیات تغییر آیات نسو حظا من ما دکروش تفریق کرده و امرور شما رب خدا کسا هم و لبیا شما بری مردم از مزیغمی معرمات خبری دارا انتا تقسمو بلا ازلام شما تابلیل شه شنیدی ما اوهل به لبیل الله شما تابلیل شه شنیدی ما زبی هالا نصور شما با داری مورد سقران شنیدی سمیده قران دارت میگه دیئن؟ نسو حظا من ماضون حلال و حرام با لئی مطلع نیست این همه نظره ها در حظ دیگو در این قرآن خافی برغیر خدا داده نسوان مردم که که دارن؟ که کلی کنند حرام آن حرامن؟ چرا؟ سما ماوهی اللبیلی بیر اللہ را بپرسید توجیه اسم کنند توجیه اسم مولا از اما میگم این نظره که برای انبیاء و اولیاء میدن در ما اوحیل بیل غیر الله داخلی قبول نمکنی میکن نظره بو تا بو تا. آخر تفسیر حسینی ایبو دو کشا دست مولا حسینم درد نکند در, در یک موزی حالان تقیقی دی آدمان نیست از این چهار موزی تقریبا در, در سوره بقره. اون نرشتے کردک هرچی برای نبی و ولی نظر کنید هم درما اویی لگی غیر اللہ داخلی الان مولا صاحب مارسی ہم بنده دیرشی لکباسی من کمیگم تو قبولنیم کنی مولا حسین کنید در تفسیر ہوت رہی اتباقا ناون تفسیر ہوت رہی نید امجا بزاستن اولا دیگر تفسیر ایسا مبری مکار کنید نہیں این همه نظرهای الهی رو می اصلا فکر نمی کنه ما حرام می من یک روز گفتن شست گزبن در سر فیر سهران در فیروز دو نفر کشته. این همه نظرهای غیر الله بودن سر فیر سهران فردن دیگه این ها که سر ملک فیحکون از خوردن میں نے کیا کوئی در کی زن خیانت میکند مرد خیانت میکند حاکم خیانت میکند ریت خیانت میکند لا تزارو ستنوارا هارن تممنو الا قليلا يقول الله شيخ همان خیانت یعنی خود بابا اینا مار دار آستی شن بعد درد دل بزنید ایمان و رین دشمنان فرمود قرآن بلا ضرورت شرحی این بار مجازات مکو اکونا دینا ایراد کنا اما سلف آنکو ان اللہ یحب و محصدی اللہ تعالی نیکو کاران و دوسطاردانا ایک نیکو کاری بکن اونار دوسطاردان نمونه دیگر برای نقض دی احض نشارا این های بودنی نشارا چکار کردن اللہ تعالی نکال نصارا و نفاظ کردن نشارا احض کردن باخر دعوانا الحمد لله